ب الله الرحمن برام خداوند بی اندوزام کربون نهایت بارح وقتی که واقعا یعنی یومات واقع شود در آن وقت هیچ کس منکری وقوع آن نمی باشد گروه را پایین میبرد و گروه را بالا میبرد آنگامی که زمین بشد زلزانی می شود و کوه ها ریزه ریز شوند همچون غبار فراگنده شوند و شما به سه دسته تقسیم شوند یاران دست راست و چی خوبی هستند یاران دست راست یاران دست چپ و چی بدی هستند یاران دست چپ و پیشی گیران پیشگام هم ایشانن مقرب در بهشت های سرشار از نعمت ها گروه از پیشینیان و اندکه از پسینیان یعنی از کسانی که بعد از ایشان آمدند بر تختهای دارای های سخت بافت قرار دارند. بر آن تختها رو گروه یکی گرتکی اند بر ایشان بچه های همیشه نوجوان گشت و گذار می‌کنند با قده ها, ها و جام‌های شراب زلال از نوشانوشی آن شراب سردرد نمی شوند و نه هم مست تو بیهوش می و میوه که انتخاب می و گوشت پرنده از هر نوعی که بخواهند و زنان سیمین بدن گوشاد چشم امانند مروارید غلاب شده در صدف و این پاداشیست بر اعمالی که در دنیا انجام می دادند در آنجا نه سخنی بیهوده می شنوند و نه سخنان گناه آلودی مگر گفتن سلام سلام رو و یاران دست راست چی خوبی هستند یاران دست راست در میان درختان صدر بیخار به سر میبرند و طلحه یعنی درخت سایدار انبه دارای شاخههایی بر یکدیگر انباشته و سایه های گسترده و آبشارها و میوههای فراوان که نه خلاصی دارد و نه هم ممنوع قرار داده شده است و تختهایی برافراشته شده بیگمان ما این زنها را آفرینش نوی بخشیدیم پس ایشان را دائما با کره گردانیدیم دوستدار شوهران همسن و سال خیش برای یاران هاست. گروه از پیشیان و گروه از پسینان یعنی کسانی که بعد از ایشان آمدند. یاران دست چپ چی بله هستند یاران دستی چپ در تند باده از آتش و آبی جوشان و در سایه دودی سیاه غریص قرار دارند که نه است و نه هم مکرمت اندود بگمان ایشان پیش از این عیاش و خوشگذران بودند و بر گناه بزرگ اصرار میورزیدند و میگفتند انگامی که بی و خاک شویم و مشت استخان آیا واقعا باری دیگر برانگیختر میشویم یا نیاکان پیشین ما هم برانگیخته میشوند؟ بگو بگمان اولین و آخرین همه جمع کرده میشوند بمیاد روزی معینه سپس شما ای گمراهانی تکذیب کنید حتما از درخت از می خورید و شکمها را از آن پر می کنید و سپس بر آن از آب جوشان می نوشید پس چنان می نوشید به گونه نوشیدن شطران تشنگی زده این است زیافتشان در روز قیامت آمد ما شما را آفریدیم پس چرا این حقیقت را تصدیق نمی کنید آیا پس به این آوه که آن را در رحم واریز می کنید نمی بینید؟ آیا شما آن را می آفرینید؟ یا ما آفریننده آن هستیم ما مرگ را در میان شما مقدر کرده ایم هرگز پس نمی مانیم یعنی کسی بر ما پیشی نمی بر اینکه که امثال شما را تبدیل کنیم و شما را به حالت پدید آوریم که نمیدانید دانید و یقینا آفرینش اول را دانستید پس چرا آن را باید نمی پس آیا دیدید چیزی را که می کارید؟ آیا شما آن را می رویانید یا ما رویاننده اید؟ و اگر بخواهیم آن را به در هم کوبیده مبدل می سازید به گونهی که به حیرت افتید و بگوید یکینا زیان من شده ایم و بلکه ما از سمره زحمت خود ببهره شده ایم. آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را از ابر به شکل بارندگی نازل کرده اید یا ما نازل کننده ایم اگر بخواهیم آن را شور می گردانید پس شورا شکر نمی گذارید آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده اید آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفرینده ایم ما آن را پندی و بهرهمندیی برای مسافران گردانی ایم پس نام پروردگار بزرگ خود را با پاکی یاد کن و علاواتا سوگند یاد می کنم به منازل ستارگان و این سوگندیست واقعا بزرگ اگر بدانید این حقیقتا قرآن است گرامی قدر نوشته شده در کتاب محفوظ جز پاکان کسی دیگر به آن دست نمیزند نازل شده است از طرف پروردگار جهانیان آیا به این سخن مدایه نمیکنید یعنی حقانیت قرآن را میپوشانید و آیا بهره خود را از زندگی تکذیب قرآن قرار می دهید؟ پس چرا وقتی که جان به گلو رسید مرگ را دفع کرده نمی توانید در آن وقت شما این حالت را می بینید و ما با او که در حالت نزع قرار دارد نسبت به شما نزدیکترین ولی شما نمی بینید پس اگر به شما با مقابل اعمال خیش مجازات نمی شوید چرا روح را باز نمی گردانید اگر راستگوی هستید پس اگر او از مقربان درگاه خدا باشد برایش آرانی خوشی و بهشت پر نعمت ارزانی شده است و اگر از یاران دست راست باشد پس بر تو از یاران دست راست سلام باد و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد پس سرنوشت او مهمانی است از آوی جوشان و کباب شدن و آتش دوزه پس نامی پروردگاری بزرگ خود را با پوکی رات کن